ولم تسر السيف ولم بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي سخن بنام خداست ابتدائي سخن بنام خداست انك بمثل شبه وبهمتاست آن که بی مثل شبه و بی همتا است تمام حمدسن و صفت بخداوند یکتا و بی همتا و درود بی پیان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برادران مهاجر و مجاهد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خداوند منان را سپاس گذاریم که به ما فرصت داد تا یک بار دیگر از طریق رادیویی صدای جندالله به خدمت دوستان عزیز قرار بگیریم بله همکاری عزیز امروز جمعه تاریخ چارده جمادی الاول اول مطابق 6 اپریل حرکت اسلامی ازبکستان رادیویی صدای جندالله نشرات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه ادامه می دهد خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشی. Olemme tänään toivojvalme, että taistelujen perunoimme ilmoitettuissa päivissämme on päätetty. Kyllä, rouva, tänään me käyvät meillä eri puolilta taistelujen perunoimista. Ilmeisesti tämä on perunoimista, mm. yeah jossa anyway, on jäljellä useita eri asioita. Tämä on Islam, jossa on <felikin> فنا له وحبه الله رضوانا. فعاد يهتز في عطفيه مؤثراً يبيد بين بنات الحسن نشوانا. هذا الذي كان يرجوه وينشده سلسلة عن درسها. خلاف عاقلان عمل بايد كارت أبله كوروز روشان شمع الكافور نهات. Zud bini kashbasha raughan nabashad dar charagh barasti nemitavanim shukrgozar ne'mat haye jalla jalaluhu o az, dastu, az zbana, ki barayat ke az ohde-ye shukrash kamyabi, agar jala har qatreh dur shodi chun khar bazar ریاکاری ناپیسند است ای درونت برهنه از تقوا که از بیرون جامعه ریا داری پرده هفت رنگ در مگذر تو که در خانه بوریا داری هر کس با اصل خود باز میگردد. گردد نگیرد هر که بنیادش بد است تربیتنا اهل را چون کردگان بر بد است بسی تمگر بخشایش مکن پیسندیده است بخشایش ولیکن منی بر ریش خلق آزار مرهم جاهل و بیهنر درک ندارد پیاز آمد آن بیهنر جمله پوست که پنداش چون پست مغزی در اوست انسانیت به تعلق نداشتن بر دنیاست تا به دکان و خانه در گیروی هرگیس ای خام آدمی نشوید باید سخن قبل از ادا ارزیابی شود تانیک ندانی که سخن عین سواب است باید که گفتن دهن از هم نگوشایی حسادت مرگ تدریجی است خوب همکار عزیز اندرسها را به خدمت شنواندگان تقدیم نمودی خدا کنه که این اندرس درسی خوبی برای از عزیز قرار گرفته باشد. اکنون در این لحظات از پروگرام توجه شما را به یکی از درس های مفتی ابو زرعظام حفیظه الله جلب میداریم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال الله تعالی هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يوفكون صدق الله العظيم وملغنا رسوله الصادق القوي الامين متواجه باشين امروز ان شاء الله بإذن الله تعالى درس ما درباره دموکراسي ميشود استاد يوسف لدياني رحمه الله شهيد فتوا دا دادگي است كي دموکراسي يك بوتس بوت يا بوتي نواس د هي زمانه حاضر Yäksehänäminen neuväis. Vaidät Fattuaa ehliläimä isä. Ulamaa haq Kiä dä rää jihad Dä rää haq Shahid kerätä syöden Hämme tälle fattuaa doden. Ihmäroos kiä ulamaa suu asten Ulamaa toogitt asten Ulamaa parlimaan Bazar asten Khoj Lekin Asal Maagz Asal Zakaa Tiedä doden حتی که شهید شده از دنیا رفتن. همی تر آدم بودن. همی مردم زید دموکراسی بودن. فتوه هم دادن که دموکراسی یک نظام هست که بوت دور حاضر است بوت زمانه نو است تعریف دموکراسی را میفهمانم اول که دیموکراسی چی هست؟ این کلمه از کجا آمدگی است؟ بفهم این که دیموکراسی اصلاً کلمه لفظ يوناني هست. اصلا ديموکراسی ديموس کراتوس هست. ديموس معناش قومس خلق. کراتوس معناش چیاس حکم حاکمیت فهمیدیست؟ یعنی ديموس کراتوس معناش حاکمیت خلق است. چیاس حاکمیت خلق. یعنی در این نظام ده حاکم که میباشد خلق میباشد سعی شد؟ خود نامش شد دیگر سوال همی است که دموکراسی چرا پیدا شد چرا رواج, رواج شد چرا مشهور شد در دنیا اولا خود در عالم کفر مشهور شد نه؟ در عالم کفر رواج یافت چرا یافت؟ این را باید بفهمیم که از کجا تولد شده گه نظام دموکراسی. مرادران عزیز بفهمین که در اروپا 200 سال پیش 200 سال پیش تقریبا دو تا نظام بود یک نظام نصرانی کلیسا یک نظام پادشاهی چند بود دو تا نظام کلیسایی نظام پادشاهی نظام پادشاهی خواهش پادشاه اونجا حاکم بود قانونش چی بود خواهش پادشاه پاش چیز می خواهد و قانون میشه بس می خواهد کسی را بالا کنه بالا میکنه کنه می خواهد کسی را پس می زنه پس می زنه. می خواهد کسی را در تنور می پرتوی می, پر می پر هیچ فرق نیست قانونش اصلا با خواهیش پادشاه دولت می چله. نظام سلطنت و نظام حکومت به چی می به خواهیش پادشاه پادشاه چیزی را میگه از دهن مبارکش چیز بر آمد. او و قانون است فهمیده شد؟ این نظام پادشاهی بود دیگه نظام است نظام کلیسا کلیسه اصلا عبادت خانه نصرانیا را گفته میشه ملله کلیسا که بودن که نامش در اصطلاح نصرانی پاپا است چی است؟ بابا، پاپا، پاپ این نامش است پادری میگه؟ شما میگه پادری؟ پادری نیه و پادری چرسی است یه هم چرسی است که دین را نمیفهمد خدا را نمیفهمد لیکن یه چرسش دیگر رقم است چرسش پیسه و زن است او چرسش ایه لیکن هر دو تقریبا یک پادری است یک پادری است در اردو پادری میگن د فارسی بابا میگن در انگلیش پاپ, پاپ میگن پاپا میگن. سعی شد حاضر که پاپ است نامش پاپ بندیکیت ازو از او پیش پیشتر یک بود نامش پاپ جان پال بود ای بین المللی پاپ میباشه در همه دنیا مفتی عظمش اسمی یعنی ملایش را پاپ گفته میشه, میشه خلاص پاپ که هستن ایمی گفتن که ما نظام انجیل را حاکم میکنیم. انجیل تحریف شدگی است انجیل را تحریف کردن. انجیل را تبدیل کردن بلکل. او کتاب خدا نماند. او هم خواهش است. لیکن او خواهش مله نصرانی است. او خواهش پادشاه نصرانی است. همین فرق ماند. در میان خواهش پادشاه در میان خواهش پپ مردم در بدر خاک بسر شدند. همین نصرانیه که امروز ما را تهمت میکنن که شما مسلمان ها هیچ چیز را نمیفهمید فهمید همین احمق بودند که ملاه سال سال غسل نمی کردند می که غسل نکردن ای چیست؟ فخر است غسل نمی کردند حتی که بعض شا لباس نمی پوشیدند عورت را پت نمی کردن. مخفی نمی کردند همین زلیل و رسوا بودند این پاپ های نصرانیه بودند کتابه Sheikh Abu Hasanna Dabirahimaulas, Mada Hasir al Alam bin Hitatil Muslimin. Chizione Didagias Alam Jahon Bazawale Musulmona. Musolmona ki Zawal Radidan Baz Dunya Darba Darshut. Hami Popai Ulamoy Nasarani Abu Danki each Chizra in Sonia Nami familia. Khahishe Popo Khāishe Pasha Darmionesh Mardum Chishudan Dar Badarshudan. Ulamoi تکنولوژی که امروز هست علماء سعنس سعنس را میفهمی نه؟ علماء علم دنیاوی گفتن که دنیا چی دنیا دایره است. او گفتن که نه دنیا دایره نیست او را گرفتن با آتش پرتفتن سوزاندن او را که چی طور ما زید دماغ ما میگیم که دنیا گول نیست دنیا مثل تخم است. تو گفتی که دنیا گول است دا دایره است. پوره گرفتند در آتش پرتابتن همین ق جاهل بودند عالمای ساینس گفتن که امی آفتاب که هست حرکت میکند یه پاپای نصرانی ها گفتن که حرکت نمیکند ضد دینت قاب زده آوردن با تندور دوختن ما را با آتش میسوزاندن همین ق بدبختا بودند نصرانی ها یا عالموش بودند یعنی مردم دهی ظلم و دای عذاب بودند که بعض مردم خیستن گفتن که نه نه پادشا و کار است نه کلیسا به کار است. ما خود ما حاکم هستیم. این جمهوریت و دموکراسی نتیجه زلم پاپا و نتیجه زلم پادشا است. این اصلا برای مسلمان ها کار نیست. چرا که در مسلمان ها پارشا ها ظعاالب نبودن. کسانه که بودن یک چند تا هستند زیاد نبودن لیکن نظام نظام زلم نداشتند که خواهیش پادشا قانون باشد نه؟ خلیفه عموی باشد خلیفه خلافت عبا... عباسی باشد خلافت ترکی باشد خلافه عثمانیه قانون همشه قرآن بوده خیر و ظلم خود هر جای هست لیکن گپش قانون نبود گروه ظلم میکرد عالمان میخواستن مفتیه فتا میدادن که تو ظلم کردی یعنی اصلا برای مسلمان ها برای امت مسلمان قانون دموکراسی بالکل بلکل نیست چرا که قانون دارم ما قانون ما چیست؟ قرآن است حدیث است اجماع امت است قیاس است که در دایره ای چار چیز باشد دلایل اربعه کتاب الله سنت رسول الله اجماع قیاس در دایره ای چهار تا چیز باشد دائره در دایره شریعت در دایره قرآن و حدیث باشد یه قانون ماست ما, ما هو اصلا برای دموکراسی نیاز نداریم حاجت نداریم لیکن همه احماقا که امرو در پارلمان شستگیان در بازار بغ بغ بغ میکنه اینا نمیفهمن که ما دموکراسی را برای چی آورده میندجه برای ما خب با کار نه دموکراسی نام دموکراسی را فهمیدیم؟ دیموس کراتوس سبب تولد شدن دموکراسی را فهمیدیم؟ صحیح شد فهمیدین ها بیاین حاضر در مرحله سوم داخل میشیم که اساس دموکراسی چی هست؟ اساس دموکراسی چی هست؟ هیچ مرحله سویم است. یعنی بنیاد دموکراسی چی است؟ دموکراسی به چی استاد است؟ او چند اساس است؟ یک انکار حکم حاکمیت الله. لیکن او امیتر نمیگن امیتر زبان شیرین میگوین چی میگن که حاکمیت خلق اول اساس چی است؟ حاکمیت خلق حکم با خلق می باشه دوم اساسش اکثریت است زیاد مردم کدام طرف باشه او زندباد است اول هر دو اساس را گپ میزنه ان در مرحله چهارم بعض مفسده های مفاسد های جمهوری و دموکراسی را بیان میکنیم حاکمیت خلق بیایید در میزان اسلام ایران می مانیم. آیا حاکمیت خلق در میزان اسلام qimat edorat ne dalil biorim dalil az quran allah taala mi hukmu illa lilla. nis Hakimiat nis hukumat magar roye yani hakim Fakat vaqat allah as diger hech chiz hech allah taala da ayat mi ki amara alla taabudu illa ia. That dawami oyat might. Inil hakmu illa illa amara alla taabudu illa iya. Amar kar Allah tala ke shuma ebadat nami kunin magar Allahra. Aybodat chankasimas. Abada te kauli. Ibada kauli chias. Hami dawata kihosir kadesim ebada kauliyas. Abada te amali chias. Abada amali. از یاد گرفته که در کابل و در میرانشا و در میرالی و در کراچی انفیجار میکنی و عبادت عملی است. عبادت جانی و جانی و بدنی عبادت جانی است. جانی بدنی یک چیز است نه؟ مثل که حج یا فیدائی کردن است یا عبادت بدنی است. سعی شد؟ اگر چه اینجا دیگر مثال ها میارن علماء، لیکن ما که مجاهی دستیم، مثال آسان هستم با شما گفتیم عبادت بدنی نماز است عبادت مالی زکات است عبادت جانی و بدنی عبادت جانی و مالی حج است که پولتان مصرف میکنه خودتان میری سعی شد اینجا الله طالع فرمده است که امر الا تعبدو الا ایاهو که الله طالع حکم کردگی است امر کردگی است که غیر خدا کسی را عبادت نمیکنه اینجا کدام عبادت مراد است باید ما آیت را چیزش را ببینیم که در پس چی گفتگی گیه است اللہ میبینیم که این الحکم الا لله اما الا اللا تعبدو الا ایا ازی این معلوم میشه که اینجا مقصد عبادت بدنی نیست خیر در عمومی معنا خود داخل میشه لیکن همین جده همین آیت عبادت خود همه عبادت بندگی خود همه می هم داخل میشه لیکن دری آیت اصل مقصد از عبادت چیست از کجا می فهمیم که پیشتر لفظ حکم تیر است. از اینی که اینجا عبادت حکمی مراد است عبادت حکومتی مراد است حکومتی که نماز خواندنم نم عبادت است حج کردنم نم عبادت است زکات داده عبادت است جهاد کردنم عبادت است حکومت کرده عبادت است شنواندگانی عزیز از شما معذرت می‌خواهیم که نظرا به مشکلاتی فنی نمی‌توانیم همه این درس را به خدمت شما تقدیم نماییم ان شاء الله در برنامه‌های بعدی ادامه این درس را شما بعزيمه جبارة كبرى واراده لا تعرف القهر واراده لا تعرف القهر بجهادنا بجهادنا سيزول الشرك نظام اسلام نظام اسلام حول از اینکه به تشریع نظام های اسلام بپردازیم، در مرحله اول ویجگی های دین اسلام را به شما بیان می نماییم. ویجگی های دین مبین اسلام اول، از جانب الله متعال است دوم، اسلام دین شامل است سوم، همگیر بودن شریعت اسلامی چهارم، وجود قانون جزاد در اسلام پنجم ارزشگرایی و واقعیبینی خب دستانی عزیز این بود ویژگی های اسلام اکنون نظام های اسلام را به صورت وار ذکر نموده و با تشریح هر کدام میپردازیم خدا که از معلومات ما استفاده نیک نموید نظام های اسلام گفتیم که یکی از ویژگی های اسلام این است که تمام نواحی و جوانب زندگی انسان را شامل میباشد از مظاهر این شمول احکام متعلق به اخلاق فردی و روابط مردم فیمابه نشان می باشد. از این احکام نظام خاصی را تشکیل می دهد. مانند احکام اخلاقی که نظام اخلاقی را تشکیل می دهد. مربوط به خانواده نظام خانواده را تشکیل می دهد و حق از, از سایر احکام. ما در این بخش مهمترین نظام های اسلام را با کمی تفصیل بیان نموده و نشانه های بارز آن را مطابق ضرورت آشکار می سازیم اقسام نظام های اسلام اول نظام اخلاقی دوم نظام اجتماعی سوم نظام افتا چهارم نظام احتساب پنجم نظام حکم و حکومتداری ششم نظام اقتصادی هفتم نظام جهاد هشتم نظام حدود و جرایم. اکنون به تشریح نظام اول اسلام که عبارت از اخلاق بود می پردازیم تعریف اخلاق خلق در لغت طبیعت، سجیه و ملکه را می گویند و در اصطلاح چنانچه امام غزالی تعریف کرده است اخلاق عبارت از حیات و ملکهی است که در نفس انسان راسخ می گردد و در اثر آن افعال و عملکردهای انسان به آسانی و سهولت صادر می شود بدون اینکه با فکر کردن و اندیشیدن ضرورت احساس کند اخلاق را با در نظر داشت مفاهیم اخلاقی می توان چنین تعریف کرد اخلاق عبارت از مجموعی از ها و صفاتی است که در نفس انسان مستقر می‌گردد و در روشنایی و میزان همان صفات است که قبح و حسن اعمال در نظر انسان ظاهر می‌گردد و با در نظر داشت همین شناخت از قبح و حسن اعمال به بعضی اقدام می کند و از عده اجتناب می ورزد. اهمیت اخلاق اخلاق اهمیتی بزرگ در زندگی انسان دارد. زیرا تمام سلوک و عمل کردهای انسان از آن صادر می گردد. حتی می توان گفت که سلوک و رویش انسان همیشه موافق و مطابق معانی و صفاتی است که در نفس او مستقیر می باشد. امام غزالی سخن جالب و ای در این مورد گفته است جایی که در احیای علوم می نویسد هر صفتی که بر قلب چیره شد اثر آن حتماً بر جوارح ظاهر می تا تا اندازهی که انسان بدون اختیار موافق و مطابق آن حرکت می کند پس عملکردهای انسان پیوند محکم و دائمی با معانی و صفات مستقیر در نفس او دارد درست؟ مانند درختی که شاخه‌ها ها و تنه آن بیرون از خاک است ولی پیوان دی محکمی پنهان در محکم بارشه های پینهان در خاک دارد و از آن تغذیه می شود معنای سخن این است که اصلاح افعال و اعمال انسان و تسکیه اخلاق او ممکن است زیرا همیشه فرع تابع اصل است و اگر اصل اصلاح گردد فرع حتما به صلاح می رسد و اگر اصل فاسید گردید Farian behtyarba suifasat miravat. Wel beledot tai jibu jakruju nabetu hubi isni robbi. Wel ledi huobutele jakruju ille nakide. Keda li kanu li komi yeshkurun. Sure araf oi pin Wazamin podcast, kik johash be isni parwardigarash birun mi oyat. و زمینی که ناپاک است جزگیاه اندک و هر از آن بیرون نمی آید این گونه نشانه ها را برای گروهی که سپاس گذارند به صورتهای گوناگون بیان می کنیم لیزا راه و رویش گذیده و موفق خاطر اصلاح مردم و تقویم سلوک و عمل آنها و فراهم آوری زمینهای رسیدن به زندگی و زوانیک این است که رهروان راه دعوت از اصلاح سازی و تسکیه نفسها آغاز نموده و سعی نماین تا که ارزشها و مفاهیم اخلاق همیده را در اماق نفس انسانها جا بجا سازند به همین لحاظ است که اسلام بر اصلاح نفوس تاکید بیشتر نموده و اعلان نموده است که رونم و هر نوع تغییری در حالت مردم ام از سهادت و شقاوت آسانی و سختی آسایش و نارامی اطمینان و استراب عزت و زلت و امثال آن تغییراتی است که در نفسها و صفات و مفاهیم اخلاقی و سروکی آن وارد می آید الله تعالی فرماید اِنَّ الله لا یغیر ما بِ قَوْمِنْ حَتَّى ما مَا سوره رد آیه یازده هر آینه الله تغییر نمی دهد، حالت قومی را تا وقتی که تغییر دهند، آنچه در نفسهایشان است اهمیت فضایل اخلاقی از ناحیه دیگری نیز ظاهر می گردد به این شرح که انسان قبل از آنکه به کار اقدام کند، یا عملی را ترک نماید، آن را در میزانی ارزش های اخلاقی مستقیر در نفس خود میزنجد بعد از آن که انجام دادن آن کار، ویا یا ترکی آن در نظرش مقبول و پیشندیده آمد، رغبتی در نفس او نسبت به آن در حرکت آمده و متوجی آن می شود و به دنبال این رغبت به آن کار اقدام می نماید. و اگر آن عمل در میزان ارزشهای های مستقید در نفس موافق نیامد، نفس انسان نسبت به آن احساسی کراهیت کرده و از آن کنارگیری می کند. عملیه سنجش و میزان در بساوقات خیلی سریع و غیرمحسوس می باشد به با اندازه که احیانا انسان عملی را انجام میدهد و یا کاری را ترک می کند بدون این که تفکر و تأملی در آن بکند و برعکس در بعضی حالات عملیه میزان وقتی طولانی و تأمل زیادی را دربر بر گیرد و حتی در بعضی اوقات به یک مناقشه و جدادی درونی تبدیل گردیده و به نتیجه نمی رسد. که در اثر آن انسان در انجام دادن کاری و یا ترک آن به تردید می افتد. ولی مهم این است که در تمام این حالات عملیه ارزیابی و میزان برای انجام دادن هر فیلی و یا ترک کاری بدون استثناء صورت می گیرد. ارزیابی و میزان اعمال با میارهای اخلاقی، صحت، و حقانیت این ارزیابی، عمق التزام انسان به آنها و تنفیز تصامیمی ناشی از آن قضایایی اند که مستقیمن وابسته به معانی و ارزش های اخلاقی و سلوکیی اند، که در زوایای مخفی نفس انسانی مستقر شده است و ارتباط امیق با کیفیت این ها دارد، چون خوبی و بدی آنها اندازه رسوخ و استقامت آنها در نفس و احساس حماسه و غیرت نسبت به آنها و احساس حاجتمندی به آنها لذا به خاطر ظهور اثرات اخلاق در عملکرد انسان صرف این کفایت نمی‌کند که انسان بعضی از فضایل اخلاقی را شناخته و شماری از آنها را در حافظه خود انبار کند و در مناسبت‌های مختلف از آن سخن گوید بلکه باید این فضایل در اماق نفسی او جاگزین گردیده و کیان و تمام وجودش رنگ آن را اختیار کند و همچون رنگ سیاه و سفید برای جلد صفت دائمی انسان گردد. این فضایل همیشه در ذهنش حاضر بوده و بر تمام کردار و گفتارش مسلط می باشد و نسبت به آنها احساس حمیت و غیرت کند. و ایمان و یقین کامل داشته باشد که حیات انسانی در صورت تفرید و کوتاهی در عرضش های متعالی اسلام هیچ گاهی به اسلام و تسکیه نایل نمیگردد از همین جاست که اسلام بر معانی و عرضش های اخلاقی تحکید فوق می نماید. و نفس انسانها را به سوی آن تشویق و ترغیب می کند آن را همیشه تکرار و بازگویی می نماید. تا مسلمان همیشه آنها را باید داشته کاملا خود را برنگ آن بیامی زد اثرات آن در تمام عملکردهایش به صورت واضح تبار و زیابت. شنوندگانی عزیز این بود معلومات مختصر در مورد اخلاق اسلامی ایدامه این بحث را در برنامه های بعدی فراموش نکنید الله تعالى بهم اي متوفق عمل نسي فرمايت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد تل الشيخ ابن نيران تقذفها أيدي خديعتهم قد روت أثينا ليس الشجاع الذي يلقاك مبتادرا مثل الذي التف بالآلات ترمينا قانون نوبت به بخش آخری پروگرام امروزی ما رسید البته در این بخش از تحولات یک هفته شما را خبر می‌سازیم افغانستان شش جمادی الاول مطابق 22 مارس در ولایت فرا یک جنگ بزرگ بین مجاهدین و افرادی پلیس صورت گرفت نظر به های زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این جنگ تقریباً چلتن تن از افراد پلیس کشته و نیز از مجاهدین پنج تن به شهادت رسیده و دوازده تن دیگر جراحت برداشته‌اند در عین حال حکومتی کذاب افغانستان میگوید که در این جنگ یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است و از مجاهدین 20 تن کشته و 22 تن دیگر جراحت و دو تن اسیر گردیده‌اند به تاریخ مذکور در ولایت کندز منطقه از در نتیجه امفجار یک ماین برادران ما یک اراده متری رنجر حکومت با تمام سرنشانانش به حلاکت رسید. هفت جماع دیل مطابق 3 مارچ در نتیجه امفجار یک ماین در مرکز ولایت کندز یک اراده رنجر حکومت با تمام سرنشانانش به حلاکت رسید. البته گفته می شود که این کشتشدگان همه ملیشه های محلی می باشند. 8 جمادی لوال مطابق یک مارچ در ولایت پکتیا یک برادر به نام که در داخل حکومت وظیفه انجام میداد نوتن از ملشهای محلی را به قتل رساند و بعد با غنایم دیگر به شمول یک اینجر به صف مجاهدین پیوست 10 جمادی الاول مطابق 2 اپریل در نتیجه انفجار یک ماین در حوضه چهار ولایت قندهار دو فرد پلیس کشته و یک تن دیگر مجروح گردیده است روز استشهاد به بتاريخ 11 جمادی الاول مطابق 3 اپریل در ولسوالي شواليكوت ولایات کندهار در نتیجه انفجار یک مین در ویلایت قندهار مجاهدین بر بالای یک پوسته حکومتی حجوم بردند که در نتیجه یک پولیس کشته و دو تن دیگر مجروح گردیدند با تاریخ مذکور در ولسوالی نهر سراج والیات هیلمند مجاهدین بر بالای یک پوسته حکومتی حمله نم که در نتیجه ده تن اپراد پولیس را کشته و یک عرادرینجر را به غنایم دیگر با خود بردند روز 14 شنبه با 12 4 اپریل یک استشادی با از 8 به دو و روز از با تاریخ مذکور در نتیجه دو این جداگانه در ولیت بغلان 24 تن زخم برداشتند پاکستان وکمات پاکستان حکومت اسماعیل بن الدین را کیدر عملیات ایبتابات دستگیر گردیدہ بودند فقط بہ جرم اینکه ایشان بدون سند رسمی در خاک پاکستان متهم میکند در این حال حکومت ایشان را 45 روز 10000 در از بدون قرار گرفت 4 از سیدان در خبرنامه‌ای که آسوی کوفار بناشر رسیده ذکر گردید که شیخ حسام بن ولادین 2001 تا 2011 پنج بار مکان خود است باز هم هفته جمعه در بر بر بالای دران چه انفجار یک موین در خیبر جنسی که در آن یکی از موترهای رؤسای قوم مرده حمله قرار گرفت دو تن از رؤسای گشته و چندین تن دیگر جراحت 5 جمعه اول 28 بعد از واقعه شهر تولوز در فرانسه که در آن برادر محمد مرع به شهادت مردم در مورد دبط این برادر با هم مادر این برادر خواهان دفن آن در نزد خودش در شهر تولوز میباشد ولی قوم والی تولوز به این کار مخالفت دارد پدر این برادر میگوید که جسد وای را به جزیره العرب بیاورید که وطن اصلی اش است در همین حال پدر این برادر حکومت فرانسه را مورد انتقاد قرار داده میگوید که شما چرا پسر مرا به قتل رساندید در همین که haftی جمادی مطابقه مطابق مارچ نتایج عملیاتی تولس تاکنون بپایان نمی رسد. در این حال مسلمانان از هر نوته فرانسه به یهودیان اختار می دهند. با خبر باشید که این شوروی کار بود. انشالله در آینده نیز این نوع عمل را انجام می دهیم. در این حال پلیسی فرانسه از تفتیش افراد خسته شده و می گوید که تاکنون نزدیکان را به جرم تروریست بودن دستگیر نموده اند. از این جمله یک تانی آن بنام محمد شاملانی، کماندان گروهی فرسان العزامی باشد. بیت المقدس در بیت المقدس یک شخص یهودی که سینش تقریبا به هفتاد میرسید در عبادت بود از توی یک جوان مسلمان مورد حمله قرار گرفت البته این جوان توسط تبر حمله نموده این مرد یهودی را زخمی ساخت و بعد خود جوان دست به فرار زد در همین حال یک جوان عرب دیگر دو هفته پیش بد یک زن یهودی که پلیس بود در داخل منزلش حمله نموده به قتل رساند و یک هفته پیش دو جوان عربی بد دو یهودی که در داخل قطار بودن حمله نموده از چند پول و بعضی چیزهای دیگر را اخص نمودند سیتالیا در شهر ایتالیا یک مرد عربی به جرم اینکه در حین تدریس قرآن کریم دختر 12 ساله خود را مورد لطمه و کوب قرار داده بود مورد محکم in قرار گرفت در این حال مرد Man in Korro نکرده میگوید که این هیچ نوع جرم در دین اسلام شناخته نمی‌شود من این کار را به روز 2 shaba darshaan Rusiaan, dar nattijay suqti yaktayra 29 tan dar hamin hal 4 tan digar darin vakiy jaan baslamat gordan. dar nattijay oteshuzi daryaq kampani 7 tan kustashudan. dar hamin afrodika az Uzbekistan miibo عراق روز چهارشنبه در نتیجه انفجار یک مین در شمال بغداد پنج تن افراد پلیس کشته شدند گفته می شود که هدف این حمله یک ژنرال عراقی بوده است ولی که متاسفانه مذکور از این حمله جان سلامت برد و چند جدید از افغانستان روز چهارشنبه با تاریخ 4 shumma, در اولسوالی خاکسفی دی ولایتی فرا مجاهدین بالا یکی از پسته های ملیشای محلی هجوم بردند که در نتیجه 8 تن محلی 5 اپریل در اولسوالی کشمیر ولایت بدخشان بالا یکی از مرتدین داخلی با نام که از جمله فرماندهان ملیشای محلی بود عملیات استشهادی صورت گرفت که در نتیجه این دیگر رسید در همین روز ملعون جنرال جان آلن فرماندهان عمومی نیروهای ناتو می گوید کتابستان امثال یک سالی مهم با نیروهای خارجی بشمار می رود زیرا مخالفین حکومت از هر نقاط افغانستان در حال دخول در مناطق مختلف افغانستان شنواندگان عزیز رادیوی صدای جندالله این بود داشته برنامه امروزی ما که به خدمت شما تقدیم نمودیم تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند منان می سپاریم جمعه خوشی داشته باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هيا بنا كي نستعيد قدسًا جريحًا قد سبي اتكل <سؤال> اليهود عرضنا داسوا كرامة مسجدي وتعرضوا لنبينا الشاش ابي Vau! Vau! Vau! Vau! الشاش Vau! Vau! Vau! Vau! Vau! Vau! الشاش Vau! Vau! وأطرب مسمعي في الشاش الأديب فكانوا لا تفرح فقد جئنا بجيش احمدي يكون للموت كما تهفون شرب الخمرتي فكانوا لا تفرح فقد جئنا بجيش احمدي يكون للموت كما تهفون شرب الخمرتي آهل لنيل شهاده في ساح أقصان الأبي آهل لنيل شهاده في ساح اقصان الابي واطلب مسمعي رسوص رشاش أبي زمجر واطلب مسمعي رسوص رشاش ابي زمجر واطلب مسمعي رسوص رشاش أبي زمجر رثا الظبا